بالقاسم المصطفى ومحمد وعلى أهل بيته المعصومين المظلومين سي ملكه في الهسين بقية الله في الأرازين الذي يملو الأرز قستا وعدلا كما ملأت ظلمًا و جورًا و لعنت الله على اعدائهم و مخالفهم و قاتلهم و ظالمهم أجمعين من الأولين والآخرين السلام عليك يا أبا عبد الله و على الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أزبادية جامع إشقته سرمستم یا برفس انقد فنا شدم ندانم هستم یا حضرت عباس به حق زهرا با دست بریدت بگیری دستم شب تاسوعا شب مصیبت اهل بیت شب بابل هوایج ان الله امام زمانمون به احترام اموی مظلومش کشه چشمی و نظر و عنایتی به این مجلس ازا داشته باشند به امضای قبولی حضرتش برسد سواب مجلس صرف تحجیل براج آقامون بگردد ما هم شرط عدب را شرط نوکری را به جا وریم جهته جلب توجهات و عنایات خاصه امام زمان به مجلس و محفل جهته تسلای قلب داغدار آقا، تأجیل فرج آقا، سلامتی وجود و مقدس آقا، سلوات غرر رای تقدیم کنیم. حادثه کربلا رو از زوایای مختلف، یک مختصری در حد وصع وقت مجلس شرایط مردم نوع تربیتشون دلیل اقداماتشون کلام و سیره خود عبا عبدالله الحسین عهدی که با خدا بست و به پایان رساند انسانیت و مردانگی را تا قیامت معنا کرد و یک جهت هم از جهت مشیت الهی و قضایایی که به هر حال خداوند متعال برای کربلا با علم محیطش به آینده در نظر گرفته بود با اهل بیت قهد و میثاق بسته بود منتها یک طرف امده قضیه حاکمانن و دستگاه خلافت پیروانشون سعی میکنن تمام قضیه کربلا را یک جنایت نهایتا دفعی معنا کنن قبلا اینجوری نبود این دفعه ظالمی بلند شد و این جنایات رو کرد حالا اونای که یزید رو به عنوان ظالم قبول دارن خیلی هاشون میخوان یزید رو هم تبرئه کنن یا بگن توبه کرده یا گناه رو گردن ابن زیاد بندازن تو این آخونده های پیروه صقیفه این تلاشها خودش جای مطالعه و بحث داره من میخوام امشب یک گوشه اشاره کنم هیچ جنایت یزی تازگی نداشت تمام این درسها رو از قبلی آموخته بود تمام این نامردیها از همون اول ثقیفه تو تاریخ خلفا بنوشته پیروانشون بارها تکرار شده بود من شاید بتونم دو سه جهتش رو مثال بزنم اینها به سیدالشهدا اسم خارجی گذاشتن خونش رو حلال اعلام کردن و او رو شهید کردن این بار اول نبود اینها خیمه های ابوالعبدالله حسین رو آتش زدن و آل الله را در میان آتش اگر نبود امر سید و ساجدین علیکن نبل فرار همه رو سوزانده بودن اینا جنایت رو تا جایی رسوندن که کتک زدن آل الله رو از کربلا تا کوفه از کوفه تا شام اینا جنایت رو تا جایی رسوندن که حتی تو مجلس یزید اون مرد سرخموی شامی گفت دختر حسین را به چنیزی به من بخوش. خب من چهار نمونه اردم شما طاقت نیاوردید. منم قصدم این نبود. دهنم شکسته باد. برا همین چهار مورد میخوام ببینم اولی و دومی چه کرده بودن. همه قضایه هم که نقل یا از تاریخ تبریه یا از ابن اصیره یا از این تواریخ دست اول خود اهل سنت از نقل های هم هیچی نمیگم امشن نوشتن ابوبک به تمام مخالفینش که با او بیعت نمی کردن مرتد می و می کشن. سه چهار نمونه رو یکیش صحابی جلیل القدر پیغمبر جناب مالک ابن نویره این قدر مرد است پیغمبر او رو وکیل خودش قرار داد تو قبیله بنی تمیم که تو زکات مردم رو نماینده منی جمع کن خرج کن قبیلش بیرون شهر بود گاهی می آمد مدینه خدمت پیغمبر از کرد یا رسول الله بعد از شما من به کی رو جو کنم پرمود وسیع من علی ابن عبی طالب نوشتن پیغمبر بهشتی بودن مالک را اعلام کرده بود مردم این از مردان بهشتیه خبر غیبی پیغمبر خب پیغمبر اکرم از دنیا رفت اولی بر تخت خلافت نشسته این آمد به مدینه مالک اعتراض کرد به ابوبکر که من خودم از پیغمبر پرسیدم این منبر مال تو نیست این منبر مال علی ابی طالبه اعتراض کرد و برگشت اولی به خالد ابن ولید گفت این برای ما مشکل درست میکنه این دو دستگی ایجاد میکنه این حرفش اگر منتشر بشه یکی از اون گوشه بلند شه یه قبیل عظیم و کار ما به مشکل بر میخوره تفرقه ایجاد میکنه خلافت ما جانه میاختی که آدم باید کشته بشه خب آدم کشی که سهل نیست یه اسمی جرمی اتهامی جنایتی گفت اسم میذاریم مرتد شده از اسلام بیرون رفته مرتدم باید کشته بشه لشکر بفرستید به خلیفه بنی تمیم به قبیله بنی تمیم فرستادن اینا با دیدن اینکه یه لشکر مسلح میاد مردان قبیله مسلح شدن خالد دید کار اینجوری پیش نمیره داد زدن ما مسلمانیم گفتن ما هم مسلمانیم و بچه را شمشیر ورداشتید و شما چرا شمشیر ورداشتید ناچار شدن شمشیرهاشون را قلاب کردن اونا هم قلاب کردن گفتن آمدیم برا زکات گرفتن خالد فهمید جان قبیله در خطره تقییه کرد. گفت زکات رو به شما میدیم. مردمانش رو نجات بده تقییه هم واجبه. شب مهمانتون باشیم هر یکی از سربازهای من و یکی از اهالی قبیله یک نفر دو نفر رو مهمان ببرن صبح ما برمیگردیم. زکات رو میگیریم برمیگردیم. تو به سربازانش دستور داد نیمه شب بلند شید صاحب خانه هاتون رو بکشید مردان قبیله رو بکشید و همین کارم کردن کشتن هم مالک را هم مردان قبیله بنی تمیم رو بعداً تو شهر جامعه اعلام کردن اینا مرتد شدن اینا از اسلام بیرون رفته بودن کشتنشون لازم بود این رسم تا امروز بین پیروان سقیفه ادامه داره یعنی حکومت پشت حکومت مخالفینشون رو بخوان از بین بردارن نگفتن چون مخالف مایی میکشیم گفتن چون مرتد شدی میکشیم چون از اسلام بیرون رفتی میکشیم لذا یزید این کار رو از اولی یاد گرفته بود روز چهارم. محرم از شرح قاضی مکتوب گرفتن که حسین ابن علی از دین خارج شده چرا؟ چون خروج کرده بر خلیفه پیغمبر قتلش خونش مباید این تا الانم آخونداشون این روالو دارن حکومت های سنی که به اسم اسلام تو دنیا حکومت میکنن مخالفانشون از آخونداشون فرمان قتل میگیرن به اسم ارتداد و میکشن عربستان اینجوریه کشورهای دیگه شون من نمیخوام واسه موجود رو تشریح کنم تاریخ خلافت عثمانی پر تاریخ خلافت بنی عباس پر تاریخ همین خلافت های نزدیکه ما پر الانم همین کارو میکنم میخوام چی بگم دو سه رو استفاده کنم یک پیروان ثقیفه حق ندارند تا قیامت سرشون رو بالا بگیرن بزرگانشون نامرد بودن بزرگانشون آدم کش بودن بزرگانشون مخالفین خودشون رو به اسم دین کشتن اینا نمیتونن سر بلند کنن بگن ما هم آدمیم من دیشب و پریشب از درس انسانیت تعمیر المؤمنین دو سه نمونه گفتم دنیا نزیرشو نداره شما میتونید سرتون رو بلند کنید شما شیعیان بگید اولای که آبایی فجعنی به مثله ارباب ما امیر دنیا نظیرش داره نشون بده ارباب ما سید و دنیا نظیرش داره نشون بده ارباب اینا چیه؟ یک زنی زنه بیعت نکرده با ابوبکر تنها جرمش اینه بگید من اینو قبول ندارم دستو داد چادرش رو ورداشتن روسریش هم ورداشتن موهاش پیچوندن گره زدن به پشت دوتا اسب، بستن دستور داد این اسبارو رو به تو کوچه و سنگلاخ و بیابان این زن داره گوشت بدنش اعضای بدنش تیکه تیکه شد مرد انقدر تو سنگلاخ این اسلام شماست تمام فقه ما میگه بر زن آسان بگیرید اینو بدونید من در محظر علما عرض میکنم تو خیلی از احکام فقهی ما زن با مرد فرق داره احکام زن رو خدا سبک گرفته مجازات زن رو سبک گرفته تو خیلی از اتهامات مشابه حکم زن سبکتر از مرده الان هم همینطور این است حقم همینه ساختار خلقت زن فطرت زن همه اینا اختزام کن و خدا آفریده بهتر از همه میداند لذا فرمود الله ارقفل نسا من الرجال خدا نسبت به زنان رعوفتره، مهربانتره. من با این قسمت نمیخوام خیلی وارد بشم اونایی که میگن حقوق زن حقوق زن اینه خدای مای اینه نسبت به زنها رعوف تری احکامش هم تره. به خاطر یک عدم بیعت با ابو بک با زنها اینجوری معامله میکردند اولین کسی که تو حکومتهای به نام اسلام کتک زدن زنها را به اسم و به جرم گریه کردن رسما باب کرد امر ابن خطاب تبری نوشته ابن عسیر نوشته همشون نوشتن ابو که مرد فامیلش خواهر و زنا و دخترا جمع شدن تو خانه برای ابو گریه میکنن طبیعی هرکس آدمش بمیره گریه میکنه. آمد دم در خب بگید گریه نکنم یکی از سربازاشو فرستاد داخل خانه گفت زنار رو یکی یکی میکشی بیرون من شلاق میزنم چرا گریه کردی صدای آیشه بلند شد منم میخواید همین کارو بکنید گفتن نه تو رو کاری ندارم تو به من داخل خانه یه استثنا برای عایشه قائل شدن زنها رو سرباز عمر ابن خطاب از خانه ابو به جرم گریه بر ابو میکشید بیرون تا میآمدن بیروش بیرون به دست خود عمر میزد. حتی ام فرورم زدن ام فرور خواهر ابو دختر ابو قحافس ذهنتون نمیره به آشورا آد کرده بودن خلفای قبلی گریه کننده را میزنیم ای کسی که به رفیق خودش رحم نکرد آدمای ابوبکر رحم نکرد یزیدش به مخدرات قال رسول رحم نکرد از اونجا یاد گرفته بود حکومت همینه رسم حکومتداری همینه از قبلیامون یاد گرفتی تو مرگ خالد ابن ولید همین کارو کرده خالد ابن ولید فرمانده لشکرشون بود چماغ به دست خودتون بود گفت هر زنی تو مرگ خالد ابن ولید تو خونه گریه میکنه کف برید این دیگه حرمت نداره چادر و رو روسریشم بکشید بیرون کتکش بزن به چه مجوز شرعی یه زنی گریه میکنه چه حرمت چرا دیگه نداره به چه حسابی شما میگید اینو چادرش رو میتونید وردارید روسریش هم میتونید وردارید کتکش هم میتونید بزنید چون داره گریه میکن من خیلی جرأت نمی بگم دهنم شکسته باید که به این حساب میگفتن قارت کنید آلالله رو معجر از سرها بردارید چون فکر میکردن این سنت عمر این عادیه یه عادی سازی براشون شده بود اسلامشون همین بود مردم هم اعتراض نمی کنند چون اگه اعتراض کنن میگیم دارید به سنت خلیفه دوم اعتراض میکنی یعنی میخاید بگید او هم محکومه مردم قلط بکنن حرفا رو بزنن نوشتن مردی از قبیله بنی سلیم شورش کرد بر ابوبکر بیعت نکرد دستور داد را از پشت ببندید تو بقی یه ای بکنید پر از هیزم بکنید دست بسته زنده زنده بندازید تو آتش بسوزانید تا معلوم بشود که بیعت نکردن با ماد هزینه داره قسم چی بذاریم مثلا مرتد بذاریم اهل قبیله هیچ کدوم بیعت نکردن به خالد ابن ولید دستور داد حمله کنید به قبیلش مردان رو گرفتن دستاشون رو بستن آوردن تو آغولهایی که از درخت و شاخه درختان و برگ ها و آغل ها را آتیش بزنید مردان خانه رو همه تو آتش بسوزن زنده زنده چکار کردند کردن؟ با ابوبک بیعت نکردند مارک چیه؟ ارتداده مرتد شدن بعد تی که مردم تعجب نمی از آتش زدن خیمه ها گفت این کار رسمیمونه، کار خلفامون همین بوده اولی هم این کارو کرده چه ای داره اگه درست نبود که اون انجام نمیدادن بخشنامه ای تبری نقل میکنه از دومی اولی ببخشید اولی یعنی قدیمتر اون شهرهایی که فتح میکنید اسلام رو که گسترش میدید شهر به شهر تو خونه هر خونه موقع اذان نماز دیدی صدای اذان بلنده او کنید مسلمان گسترش اسلام رو ببین تبلیغات اسلام رو ببین نام اسلام رو ببین چقدر می شود بدنام کرد چقدر می شود با خشونت اسلام رو اسمش رو حتی جلو برد هر خانهی موقع نماز از آن نشنیدید یورش ببرید بسوزانید بکشید اسلامیم دیگه یعنی من شما الان نشستیم از اونهای مجسمه نفاق تو زهنمونی که بودن یه مجسمه کفر تو ذهنمون که بودن اما اونا که خودشون رو اسم اسلام خلیفت و رسول الله بالا منبر پیغمبر نشستن ما داریم کشور اسلام رو گسترش میدیم ایران رو فتح کردیم شامات رو فتح کردیم مصر رو فتح کردیم صاحب اسلام ماییم لا اله الله رو ما گسترش دادیم اینجوریه خشونت به عنوان الفبای حکومت های بعد سقیف است. لذا از یزید هیچ تعجبی نداره هیچ تعجبی نداره خشونت بعد قتل دومی یکی از اون نمازگزاره های پشت سرش از اون نقل کردند. که گفت که من صفحه اول نبودم میرفتم دفاع میکردم عقبتر ایستاده بودم که عمر و تو نماز مسجد کش ابو لولو من صفحه اول بودم دفاع میکردم یه کاری میکردم گفتم خب صفحه اول چرا نبودی؟ گفت آخو نمیدونید عادت عمر چجوری بود. می ایستاد عنوان امام جماعت جلو قبل از اینکه تکبیرت الاحرام بگه برمیگشت به صف اول نگاه میکرد اگر کوچکترین نامنظمی تو صف اول بود رو شلاقشو برمیداش همه رو میزد که صف منظمه منظم بشه منظم که میکرد بعد میرفت تو مهراب مگو الله اکبر من از این شلاقش میترسیدم هیچ وقت تو صف اول نمی استاد. جور نماز رو تبلیغ میکرد این هم مردمش عاشق نماز بودن لذا تو کربلا نماز سی هزار نفری اینها فکر نکنید که اینها بی نماز بودن این نوع نمازشون هم از اونجا به یادگار پرده بودن من شب تاسوان نبود میگفتم این خلیفه که جلوی مردم پیش نماز ایستاد خودش چه اعترافاتی داره وسط نماز چه خباستهایی چه بی هایی چه نماز باطل کردن هایی چه قسل جنابت بگردنش آمدن هایی رو خودش اعتراف کرده خودش اعتراف کرده من وسط نماز اینجوری میشدم از اینا بگذارم نوبت رسید به دومی بخشنامه داد یه ادهی از این مرزنشینان که نبتی هن اینا عرب بودن تو سرحدداد زندگی میکردند بعد چون با عجم همسایه بودند و مراوده داشتند در طول قرن اینها بیچاره زبان عربیشون برگشته بود عجم شده بودن تحجبی هم نداره من خیلی از کربلایی نجفیا رو تو قوم می شناسم که این بعدیشون عربی بلد نیستن اینا اصلا نجفیان کربلایی عربه. خیلی از ایرانیای ما رفتن از دو سه قرن پیش ساکن نجف و کربلا شدن الان بچه‌شون فارسی بلد نیستن عربه خیلی از این آذری‌های همشهریای خود ما اومدن مثلا تو تهران تو قم زندگی کردن نسل دوم سومشون ترکی بلد نیستن این اتفاق عادیه می‌وته از نظر عمر این جرم بود گفت این عربا چرا عربی رو ول کردن نبطیا چرا زبانشون عجمی شده مجازات هر کس از دوستان ما نزدیکان ما اطرافیان ما به مشکل مالی برخورد همسایه از این تایفه نبتیداش میتونه او رو به عنوان برده بفروشه پولش رو زندگیش کنه برده به جرم اینکه زبانشون عوض شده کسی که اینقدر ظلم و جور و جنایت رو تو حکومتش عادی کرده روزمو رو شروع کنم پیروان او هم در مجلس یزید حکم به فروش دختر سید رو میکن. اونام اینو برد تلقیم اما امشب شب تاسو است. ایک افتاده ایز پادر ای که از غم کشیدم آدم آ رو به سردار کربلا برگو که به درگاهت آمدم ای ما که ابلفض انگل بی دست دستگیری کند ولی بی دست امشب شب حاجت گرفتنی امشب باید بریم در خانه باب الهوایج آی مردم دنیا محتاجیم به دو دست بریده اولفز آخرت هم محتاج روایت اینه فرمود روز قیامت که میشود، شود پیغمبر آقا امیرالمؤمنین رو صدا می کنن. یا علی برو نزد دخترم فاطمه به دخترم بگو بابات پیغمبر فرمود در این فضای اکبر از اسباب شفاعت چی آوردی دخترم؟ امیر المومن تشریف می آورد فاطمه جان باباتون فرمودن از اسباب شفاعت برای گرفتاران شیعه چی آورد؟ جواب عرضه می دارد به بابام بگو نگران نباشت کفانا لعجل هاز المقام المقتوعتان من ابنی العباس بگو بابا دو دسته بریده پسرم عباس را آوردن این دو دسته بریده برای این فضای اکبر کفایت میکنه این دو دسته بریده را نزد خدا شفیق قرار میدن میگم خدا شیعانم و ببخش از گناه شیعانم درگذر. خدایا اون روز دست بریده یا فحص امروز هم این جمعیت یاد گرفتن هر گرفتاری لاعلاجی میگن داریم در خانه بابل الهوائج خدا خودت به عزت و جلالت قسم خوردی در این خانه بابل الهوائج باشد کی فرمود اون زمانی که میان نخلستان دو دستش افتاد اما به تاخ میرود که آب را به خیمه ها برسانه مشکش رو تیر زدن آب و قفل عباس دیگه آقا استاد خدا یا نه آبی به خیمه ها بردم نه دستی با دشمن به جنگم امیدش از همه جا ناامید شد یک حالتی پیدا کرد آقا تو نبولفست یه غم و غصه بر دلش نشست اون لحظه خدا به عزت و جلالش قسم خورد عباس و عزتی و جلالی تو که در راه حسین من امیدت از همه جان امید شد تا قیامت در خانه تو را بابل هواهیت قرار میدم عباس کسی بیاد در خانه تو دست خالی بر نمیگردد یا اول گرچه بی دستی نیست بالای دست تو دستی این مردم گرفتار زیاد دارن این مردم مریض زیاد دارند. از گوشه و کنار مملکت دارن هی از همدیگه از این مجالس التماس دعا میکنن. اما صدر هوای جیر مردم مام زمانشونی میدانن تا امام زمان نیاد ما تو سری خوریم تا آقامون نیاد دشمن چشم تمه داره. تا آقامون نیاد زیر دست و پای این همه دشمن ما لگد مال میشیم خدایا امام زمانمون رو امشب مخوایم خدایا دو دسته بریده یا ابرفضل هم امشب مخوایم واسطه قرار بدهیم یا ابرفضل دو تا مصیبت که بقیه شهده کربلا اینجوری مصیبت ندیدن عرض بکنم و واگذار کنم خیلی دل خودم را آتیش میزنیم اولیش این آیون شبه های گذشته هر شهیدی رو ما مصیبت شو خوندیم مسیبت ودایشم خوندیم ودای علی اکبر رو خوندیم دیشت چجوری ودای قاسم ابن الحسن رو خوندیم چجوری با عمودت اما تنها یک شهید داره کربلا ودا نکرده رفت به میدان و بر نگشت اینقدر قدر غریبانه رفت کسی ندانست او از می و بر نمی گردد نز نه با خواهرا خدا آموزی کرد نه با دختر خدا س ادام علمگری پیشش و, علم و پنهان کرد. آمد پیش برادر زخ صدرری سینم تنگ شده برادر اول چرا سینم تنگ شده؟ را علی اکبر رفته قازم رفته همه احوان و انصار رفتن چرا به من اجازه میدان نمیدی؟ منم برم جانمو فدا کنم نفرمود فرمود اجازه میدن دادم برو فرمودم باز حالا که میخوای بری فترو بله ها اولای الاطفال شربت من الما ببین میتونی یه جوره آبی برای بچهای من پیدا کنی بچه هم مش مشک خالی و جلوی عمو گرفتن کازه ها رو جله گرفتن همو تو اسم امیدم به اینجوری رفت به میدان اما دیگه بر نگشت. وقتی روز آشوراتون گرما گرم جنگ زهیر ابن قین پیر فرمانده سپاه معیمنه عبا عبداللال حسینه اینا نمیدونم چی بود از عبالفز خیلی توقع بالا بود آمد خدمت عبالفز پسر امیر المومنین بهت بگم بابات چرا با ام البنین ازدواج کرد زخیر الان چه جایی این حرفاست نه عباس یه چیز دیگه میخوام بهت بگم ما اون موقع بودیم شما شاید یادت نیاد بابات به این خاطر با مادرت اون بلین ازدواج کرد که تو ذخیره ی آشورای حسین ماشید <تصفح> تو رو برای حسین مخواست بابا حسین رو را راه کنی بری باز بابات تو بچه بودی بغلت میکرد میآورد تو مسجد جلوی اصحاب همه میدید دستای تو رو میبوس گریه میکن می بوسی دی جان چرا دستای فرزندو میبوسی گریه میکنی نگاه می یه روز این دستا به درد و وزنه میгора حسین رو راه کنی بعد رنگ آقا متغیر شد ظاهر جونی تو داری به من شجاعت یاد میدی تو از من نگرانید تا خون در بدن دارم از حسینم دفاع میکنم لذا امر آقا آب آوردن بود آقا اجازه جنگیدن نداده بود لذا تمام حواسش این بود که از این نخلستان آب رو ببرم به خیمهها اما وقتی مشک تیر خورد وقف الاباس دیگه آبی برا خیمهها نداره استاد آقامون دیروز براتون گفتم چهار هزار نفر به فرماندهی امر ابن حجاج رو موکل شریعه فراد گذاشته بودن این چهار هزار نفر همه دست به تیر و کمان بردم برای یه نفر آقاتون یک گلایه از شیخ, شیخ کازم سبتی کرده کمانم این توقع رو از هممون داره فرمون شیخ قاظم سبتی این روزمو برا برای شیعانم نمیخونی کدوم روز آقا به شیعانم بگوی کسی که رشید باشه قد بلند باشه ریکل رشید یاد داشته باشه از بالای بلندی بگوید بیفته روزمین چجوری از خودش مواظبت میکنه دستاشو میده جلو شیخ قازم من که دست در بدن نداشتم این بماند این بماند شیخ کازم به شیعانم بگو سینه پره چوبه یا تیر بود از چهار طرف تیر بارانم کرده بودن من با صورت اودادم روزمیم من با سینه اودادم روزمیم به شیعانم بگو این تیرها با بدن من چه کردن <تصفيق> نمیتونم تمام کنم امشب یه روزه دیگه هم براتون بخوانم یه وقتی کربلا حرم قمر بنی آشم احتیاج به تعمیر پیدا کرد قبر شریف هم مردم عادی احترام میکنن نمیرن جلو رفتن سید بحرال علوم را آوردن مجتهد عالم سید پیر آقا بیا کنار قبر عمود بیست نظارت کن بقیه بناها کارگرا کارشون را انجام بدن این گتکاره میگه مشغول تعمیر بودیم یه وقت یه غمی دلم رو گرفت آمدم گفتم سید گفت بفرما که سید یه عمری شما آاخوندا به ما گفتید اولفض قط بلند بوده رشید بوده گفتم خب گفت بلله همین جور بوده گفت چرا قبرش رشید قدر دیدن سید برال اون رو من سر رو گذاشت به دیوار های گریه کرد گفت آخو ما فقط به شما گفته بودیم دستاشو بریدن همه ی روزه رو نتونستیم بگیم، فقط دستاش نبود پاهای همومونم بریدن